خب بسم الله الرحمن الرحیم سه یعنی ما در همون چند چندوم هستیم نهوم که بحث ملحقات مبتدا و چی بود؟ خبر بود در ملحقات مبتدا و خبر مبتدای و رو داشتیم بعدش نکره مشتقی که بعد از پایان مبتده و خبر می اومد الان رسیدیم في حذف کل من المبتده و خبر در حصف شدن هریکی از مبتدا و خبر چون هریکی از اینا حصف مشهن پ وهوری مت حظف و مبتد و جوازا؟ چه زمانی مبتدا جوازا میشه؟ فی کم چه جایی مقطدا و وجوباً میشه؟ الخبر و, چه چه و چه زمانی خبر جوازا میشه؟ الخبر خبر چه زمانی خبر به شکل؟ از اینا چه زمانی جوازا و چه زمانی وجاً حس یحظف المبتدا او جوازن دلت على تعیینه قرینه تود میگه حسف میشه مبتدا جوازن زمانی که هرگاه که دلالت کرد بر تعیین اون قرینه بر مشخص کردن اون اگر قرینه دلالت کرد جوازا چی میشه؟ که قول اکمان دین المطلب الاول تو میگی المطلب الاول المطلب مطلب اول خب اینجا تو امدید مبتدا رو چکار کردی؟ باید در واقع چونینه میگی؟ هادا المطلب الاول این مطلب اول است ولی تو بیای هادا رو چکار میکنی؟ هست شده، هادا مبتدای، محلن مرفوع هست شده المطلب هم خبرش، اول هم صفتش یوم آنه این سخنت که میگی مریض شخصی است تو لمن سالک کیف ابوک شخصی است تو پرسیده کیف پدرت چطوره تو در جواب گفتی مریض به جای اینکه بگیش ابی مریضون پدرم مریض است بیا بگی چی مریضون مریض است مبتدا چکار میکنه بل اینجا قرینه دلالت میکنه که اون مبتدا چیه پس مریضون خبر ما که مبتدا ما این شده بله یا مانند این آیه من عمل صالحا فلنفسه ومن أصأ فل... فعليها، تبين؟ من عمل صالحا فعمله لنفسه، تبين؟ عمله وليهاس في شدة، عمله شكار كارده كمبتدأ، كم بس من عمل صالحا فعمله لنفسه، عمل كمبتدأة كم شدة، هاس فيش كارده، شو قريبة وجودارين؟ و من اصاعت و هر کسی بدی کرد فا فإصا اصاعته علیه پس اون بدیش بر علیه خودشه که اصاعت که مبتده ماه چش کرده؟ حصفش کرده پس در قاعده پنجا هفتم میگه که جایزه مبتده رو چه کرد؟ پنجا و هشت یحظف المبتده وجوباً في خمسة موابع اما وجوبش در پنجا حصف شه بگه حس میشه مبتدا وجوبا در متا متاکان جواب القسم سادن مسده مبتدا به شکل وجوبی حس میشه در پنجا. هر هرگاه که جواب قسم صد مسدش بود یعنی جواب قسم اومده بود و مانه از اومدن مبتدا بیشد مانه اسی بیشد مانه د فی ذمتی لأفعلن در زمه من است حتما اون کارو میکنه فی زمتی در زمه من است لأفعلن که جواب قسمه مانع از یمینون که مبتدایه فی زمتی یمینون یعنی سوگندی در گردن من است فی زمتی خبره یمینون که مبتدایه هست شده یمینون چی شده؟ در زمه من سوگند است لا افعلا حتما این کار رو میکنم لا افعلا لا صد ما صد آمدنه چه شده؟ مبتدا شده دو اذا کان خبره مصدرا بدلا من لفظه و هو صد ما صده نحو صبر جمیل دبین زمانی که خبر مصدر بود زمانی که خبر چی بود؟ و بدل از لفظ مبتدا بود و بدل از لفظ مبتدا بود و صد مصد مبتدا شده بود و صد مصد چی شده بود؟ مانند صبرون جمیلون صبرون جمیلون. اینجا صبرون خبره. مبتدا کجای وجودن حسیه. در واقع جمله چونیه؟ صبری صبرون جمیلون. صبر من صبری زیباست. صبر من که صبری صبر میشه مبتدا یاش هم مزافون اله میشه. سبرون خبر میشه جمیلون صفتش جمیلون چیش؟ بعد لا سیما اذا کان المستثنى ها مرفوعا یکی دیگر از جاهایی که مبتا وجوبا هست میشه بعد از لا سیمایه لا سیما به معنی مخصوصا چی البته یت دیماتر یت توضیح بس بعد از مفصل. أكرم سيما لا لاسیما، لاسیما یکی از عادات یک باش استثنایی که این میاد باعثش مفصل. میگه، الان ترقمانش ولی میفهمیش. میگه اکرم ال اولامه اولاسیما زیادت. اولامه رو اکرام کرد، مخصوصاً زیاد. خب، یک شدیکی استثناء کردن. میگه بعد از لا لاسیما مبتدا وجود بر حض میشه. زمانی که مستثنایی که بعد از لا سیما اومده بود مرفو بود چی بود؟ در این مثال مرفوع اکرم الالما ولا سیما زیدون زیدون چیه؟ مرفوع، مستثنا چیه؟ مرفوه در واقع چونینه اکرم الالما و لا سیما هو زیدون ولا سیما هو هو که مبتده هزفه زیدون که خبره چیه؟ ذکر شده فما خودش اینجا توضیحش داده میگه ما در لاسی ما ما در چی در لاسی ما اسمون موصولون اسم چیه؟ موصوله ما یکی از اسمان موصوله اونکرتون موصوفتون یا نکره هست یا نکره هست که وصف شده با جمله مارو مرضه لتوزيده لا در لا ما والتقدير تقدير شيتطري اكرم العلماء ولا سيئه الذي هو زيد اه اگر ما مارو رو ما موصوله در نظر بريم ما موصوله بمعنى الذي بمعنى ما اون موقع تقدير شيتطري اكرم العلماء لا سيئه ما... لا سيئ الذي هو زيد اما اگر اینو مارو اسم موصول در نظر نگیریم بلکه نکره موسوفش در نظر نگیریم بلکه چیز در نظر نگیریم؟ اون موقع به معنی چیه؟ چیزی به معنی که تو نکره هست. اون موقع اینطوری میشه در واقعی. اکرم العلماء لا سیه چیئن هو زاید. لا سیه چیئن هو زاید. هو زاید. پس هو چی میشه؟ که با بعد از لا سیما خلاصه اینو بدون که اگر مستثنا بعد زلاثه ما مرفوع بود بدون که مبتدای اینجا چیه حس شد و این زید هم خبر برای مبتدای محزوفه یکی از دیگر جاهایی که در پنجا گفته بود حس میشه خبر چی مبتدا چارمین جا فیما به و بیسه در بحث نعمه و بیسه در کلمه نیمه و بیسه اینجا دو تا اعراب وجود داره تبقیه که از اعرابها مبتده ما حسفه مبتده ما چیه؟ دقیقه کن اذا قیل ان المخصوصا خبر لا مبتدود ببین؟ اذا قیل چرا گفته اذا قیل؟ چونه دو اعراب داره این چان اعراب داره؟ دیگه اگر گفته بشه که مخصوص خبره इजज देबार و زیدون ببین دیبا فعل مدحه بهش میگن الرجل میگیم فاعلشه زیدون میگیم مخصوصشه اگر ما این مخصوصو میتونیم دو اعراب بش میدیم. میتونیم بگیم این مخصوص زیدون خبره اگر ما اینو خبر حساب کردیم پس مبتده. ما مبتدا ما صد چیه محذوفه ولی اگر برعکس زیدون رو مبتدا حساب کردیم چون ما میتونیم هم مبتداش حساب کنیم هم خبر اگر خبرش حساب کردیم پس مبتداش وجوبن حذف ولی اگر نه مبتداش صاف کردیم اون موقع نعمر رجل خبر مقدمش میشه اون موقع نعمر رجل چی میشه خبر مقدمش پس در صورتی که ما مخصوص رو مخصوص رو خبر حساب کنیم در این صورت مبتدا ما وجوبن چیه حذف پرجوبین جایی که خبر و مبتدا مبتده هست لشه ال... اذا اخبر عنه بناعت مقتوع ان مطبوعه اما لمجرد المدح او الزم او الترحب نحو الحمد لله الكریم ببین یکی دیگر از جاهای که مبتدا ما و جوبان زمان یک خبر داده بشه با نعتی که مقتوع از مطبوعش هست یعنی شما نعتو، اون صفتو از مطبوعش قطع بکنیم مثل این مثال الحمدلله الكریم اگر اینجا ما بگیم الحمدلله الكریم ما کریم و قات نکردیم نعت الله قرارش دادیم الله مجرور کریمو ها را چکار کردیم مجبور الحمدلله الکریمه و یک روز اینو از نعت بودن قطع کردیم الحمدلله الکریم او الحمدلله اینجا ما کریم از نعت چکار کردیم قطش کردیم در این حالت خو کریم چرا مرفوعه؟ میگیم این کریم خبریه که مبتداش چیه؟ حسرت اي جوري درواقع الحمد لله هو الكريم الحمد لله هو الكريم اينم 50 بود 59 يحذف الخبر جوازا إذا دلت القرينة على حذفه وذلك يكون في الغالب السلام عليكم حذف مشود خبر جوازا زماني که دلالت قرينة قرينه اي بر حذفش زماني که دلالت کند قرينه وإذا الغالب هس وغالباً تُريده تجاههاي وذلك يكون في الغالب بعد إذاعة الفجائية بيجي إن حالات غالباً رخ ميدا بعد إذاعة الفجائية بعد شيء بانده خرجت فإذا العدو خرجت من لق عن دشمن تكبيه عدو فيك مبتدأته خبره تجيبي كذي حاس مكذي بيجي خرجت فإذا العدو کاملون دیدم که نابران دشمن در کمیره ولی کاملون رو چکار بیکنی؟ خبر حسفش بیکنی اینجا قرینه وجود داره اینجا چه؟ میتونی خبر رو جوازن حسف کنی او فی جواب استفاد در جواب استفاد میتونی جوازن چکارش کنی؟ که قولک بانده این سخنت که میگی ابوکه جواب جوابن لمن قال من اندک یکی از پرسیده که من اندک تو چه کسی است؟ تو به این که بگی اندی ابوکه، تو میام بگی ابوک. اندی رو چکار بکوی؟ حس بکوی. خب خبر رو جوازان چکار بکوی؟ میتونی بگی اندی ابوک. یعنی خبر رو ذکر کوی. ولی میتونی جوازان چکارش کنی؟ پس اندی بشه خبر ابو هم بشه مبتداش. ولی میتونی خبر رو حس بکوی. خب و و جاش و فی غیره ما در جاهای دیگر مانند ابوک ناجحان و اخوکا. ببین. ثم ييجي أبوك الناجحون وأخوك، بدرت، موافقز وبرادرت، آه، وأخوك كذلك، يا وأخوك ناجحون، آه، وأخوك كذلك، إن جمع ييجي خبر تكاري، حسش، هذي كارينة موجودة ذلك، شاس يحذف الخبر وجودا إذا خالفه ما يصد مصدقه وهو ستة أشياء. خبر وجوباً حس میشه خبر وجوباً حث میشه زمانی که جانشینش بشود چیزی که صد مصدش میشه بشه چیزی که میشه بشه جاشو بگیره و از خبر و عمر خبر بشه و اون شش چیز بی باشند جواب القسم سریح جواب قسم صریح جواب قسم ماننده لعمرک لا لَأَمُرُوكَ سوگان به عمرت حتماً در واقع این طوری ها لَأَمُرُوكَ قَسَمِ لا ببین لَأَمُرُوكَ خبر چی شده؟ بعد سوگان بعد سوگان بعد اینجا جواب قسم لَأَقُومَنَّ باشه اومده لعمرو كلا اقومان ندقين جواب القسم له وقسم به من جسرها لعمرو فائدة منظور القسم الصريح تشيه ميجي المراد بالقسم الصريح ما لا يستعمل في غيره منظور از قسم صريح ايده كه در معاناه ديگه به فقط برا چه به كار ميره برا قسم در أر... درون زبون در ادبيات عرب فإن لم يكن القسم سريحا جاز إثبات الخبر وحفره أما أجر قسم سريح نبود أجر قسم سري إن جذبني تري خبره ذكر بكله وبيتري حفص كله ولي قسم سريبود بعد الله لا فعل عنه الله باله الله فقد قسم زبان العرب ذكر كله میتونی خبرو اهد الله علی لا افعلنا اهد الله لا افعلنا علیه که خبر میتونی چیکارش کنی اینجا چرا اینجا میتونی ذکرش کنی به خاطرین که اینجا صریح نیست در جو جواب لولا در جواب لولا یکی از جاهایی که خبر وجوبال هست میشه جواب لولای لولا لعدلو لفسدت الرایا اگر عدالت نبودی رعیت فاسد میشد اینجا بعد از لولا عدل که مبتدائه خبر کجا رفت خبر صد درصد باید حسب بشه لولا العدل موجودن لفسدت الرعیه لولا علیون چی؟ لولاکه لما خلقتل افلاک یا میگن لولا علی لحلکه عمر یعنی در واقع این لولا علیون موجودن لحلکه لولاکه البته اون فعلا بماند این مثال این مثالو دقیق داشته باش لولا لولا علی موجودون این مثال یا اینجا خودش مثال آورده بود لولا الادلو لفسدتر رئیه خبر ما چه شده؟ حس شده خب این دیگه خیلی ساده است بعد لولا جوابش فائده و شرط هو این یکون الخبرو دالن على وجود المطلق فائده دل على وجود المقیدن به صفت وجب اثبتو یک چند روز پیش این بحث رو خوندیم این ولی زمانیه که خبر ما دلالت بر وجود مطلق بکنه اما اگر بر مق... بر دلالت بر وجود مطلق نکرد بر وجود مقید با یک صفتی کرد اونجا باید خبر رو ذکر کنه اونجا مثلا لولا العدل موجودون اینجا ولی اگر تو میگی مثلا لولا الامیرو لجلستو اگر امیر نبی میشستن لولا الامیرو موجودون میتونی موجودون رو باید حصف کنی ولی اگر یک خبر دیگه باشه ها مقید و قیدی باشه باید اون رو ذکر کنی مثلا لولا الامیرو واقفت اگر امیر نایستاده بود اینجا دیگه باید خبر چکار کنی؟ ذکر بکنی چون دلالت بر وجود مطلق نمی‌کنه داره یه چیزی رو براش خبری رو غیر از وجود مطلق به ما میگه. الظرف والجار والمجرور. خب یکی از دیگر جاهایی که یکی از دیگر جاهایی که خبر حذف میشه میگه الظرف والجار والمجرور. ظرف و جار و مجروف ظرف و جا رو اینجا این معنیشه الامیر و اندک موقع ما میگیم الامیر و اندک اینجا ظرف او بدهامیر و اندک ببینید این ظرف در واقع خبر میسا این متعلق به خبر محسوفه اگر اون خبر ما دلالت بر وجود مطلق میکرد، باید حذفش کنیم باید کارش کنیم این فصاحت اختزام میکن فصاحت زبان پس الامیر رو کاائرون اندک الامیرو موجودون اندک الامیرو یکون اندک باید حسفش کنیم یا الامیرو فدداری باید خبر رو چکار کنیم پس در ظرف و جار و مجرور خبر چی بشه حسف بشه اگر بر وجود مطلق دلالت میکرد اما اگر نکه بعد چی بشه مثلا ما بخوایم بگیم الامیرو مثلا جالسون اندک اینجا که جالسون باید چکار کنیم سکر کنیم از طرف بیچارد که از کجا بدونه که امیر نشست نزد؟ موجود بودن مطلق و بیشه کرد ولی اگر باقی ده های دیگر بود با چی بشه؟ تفایده حاصل بشه تفایده چی میشه؟ الحال الاتی لا تسلح ان تکون خبره حالی که صلاحیت اینو نداره که چی قرار بگیره؟ خبر معنی در بی العبده موسیعن ضرب العبد موسیعن خوب اینجا موسیعن حال هست موسیعن چی حاله و این صلاحیتو نداره که ما بیارم خبرش قرار بدیم زدن من برده را ها نبیتونیم مسیعن رو چی کار کنیم؟ خبر قرار بدیم لیوزا خبر ما محصوف و همین حال مانه میشه خبر چی میشه؟ در واقع چونینه ضرمی العبده حاصل اضاکان مسیعن زدن من برای برده حاصل زمانی که بدکار باشه زمانی که چی باشه؟ بدکار باشه و افضل و خیرین أفضل خير تعلمه وأنت تخدم المصلحة أفضل خير خوب إنجاهم أفضل خير وأنت تخدم خوب إنجا حالمان از نوع مفردش نیست و انت تخدم المسلحه و و حالیه هست انت تخدم المسلحه جمله حال هست جمله چه هست؟ ما اینجا هم نمیتونیم این جمله رو خبر قرار بدیم لذا اینجا خبر ما چی هست؟ محظوفه ان افضل و تعلمه موجود حاصل آ فائده لا تغن الحال عن الخبر یلّا اِذا کَانَ الْمُبْتَدَأُ مَصْدَرًا مُضَافًا إِلَى او أَوْ أَفْضَلَ تَفْضِيلًا مُضَافًا إِلَى الْمَصْدَرِ. ببینید، این نکته خودش هم توضیح میده چه زمانایی، چه جهایی پیش میاد. میگه حال ما رو از خبر بینیاز نمیکنه. مگر زمانی که مبتدا باشد، مبتدا باشد مصدری که مضاف به معمول شده، است مانند دربی العبده که انجام مبتدای ما مصدره درب زدن چی؟ زربه مستر دیگه زربه فعلشه یا با فعلشه زربه هم مسترشه بیگه حال از خبر بیدیاز نمی کند مگر زمانی که مبتدا مصدر مستر باشه بربه. مستره مضافه به معمولش باشه مضافه به یا دیگه زدن من معمولش منه زدن من یا این که مستری باشد که مضافه به معمولشه یا دیگه چه باشه یا اسم تفضیل باشه یا چی باشه؟ اسم تفضیلی که مضافه به مصدره مانند افضل و خیره که اینجا اسم تفضیل افضل چون بر وزن افعله و مضافه به خیر هست که خیر خودش چیه؟ مصدر پس حال زمانی از خبر بی نیاز میکنه که مبتدا یا مصدر مضاف به محمولش باشه یا افعل و باشه که مضافه به مصدره کما رایتا في المثاله دی. همانطور که در دومثال دیدی مضاف باشه به آنچه که در تأويلش هست. یعنی در تعویل مصدر. اینجا اقربو ما يكون العبد من ربه و هو صادق. اقربو. اسم تفزيل؟ ببینید اسم تفزيل اینجا مضاف به مصدر نیست. ولی مضاف به کلمه یکی اون کلمه در تعویل چیه؟ مصدره. ما يكون العبد. این ما با مصدریه هست. یکشنبه مصدریه. ما چه؟ مصدریه. پس در تعویل مصدره. خوب معمول صفت چار جایش رو خوندیم یعنی چار جایی رو که خبر وجوباً حصف می شده و صد مسد سر جاش می اومد الان پنج وین جا رو بخونیم معمول صفت المسبوقتی بنافین او استفاد ببینید معمول صفتی که مسبوق به نف یا استفام هست همون چیزی که قبلا نخوندیم یعنی اگر ما صفتی رو داشتیم که قبل از این صفت نفی اومده بود یا استفام اومده بود و, و این وصف معمول داشت مرفوعی داشت چه داشت؟ اینجا دیگه خبر ما نداری خبر وجوبا نهست میشه همین مرفوع صد ما صدش میشه همین مرفوع چیش میشه؟ ماند اقایمون اخواک آیا ایستادن دو برادرت قایمون وصفه این وصفه ما مسبوق به نفع هست به استفه است. هست قائمون اخا آیه ایساده دو براد برادر پس قائمون مبتدای ما شد اخوا هم مرفوع قائمون دیگه فائلش هست ها؟ خبر کجا رفت خبر وجوبن حصفه ما مخلول تابعوک تو مخلول نیستن رسوا نیستن اینجا هم مخلول وصفه بعد از نفی بده اسم تابع او نائب فائله خوندیمش گفتیم اگر بعد از اسم مفعول بود چه قرار میگیره؟ نائب فائل خبر کجا رفت خبر عجوبا حصفه پس مخبول مبتدا هست و خبر چیه حصفه عطف و اسم علال مبتدایی بواب المصاحبه یک جایی که خبر وجوباً هست میشه زبانی کشوی اسمی رو بر مبتدا معتوف کنی یک اسمی رو بر مبتدا چکار کنی ولی با واو بصاحبه با واوی که به معنی معه هست به معنی همراه هست با رد کل انسانن و فاعلهو ببینید کل انسان و شما اینجا فعل رو عطف دادی با کل چون کل مبتدا انسان مضاف الیه واو هم وام مصاحبه هست فیل هم معتوفه خبره بچاره کجاره محصوفه یه در واقع جمعه چونینه کل انسان و وفیلهم مقترنانه ها؟ معه هر انسان هم راه ما فیلش موجه هست محصوفه فائده وشرطه ان تكون الواف نصا في المصاحبه لتقوم مقام معه وحین اذن يكون ذلك كما لو قيل كل انسان ما افیله شرط اینه که اون واغ سریح باشد در مصاحبه در معنای سریح تا جانشین مع باشه تا جانشین چه باشه در این صورت چون اینست که گفتیم مانند کل و انسان معافیلی هر انسانی یعنی ما ببینید این وافی که اینجا اومده کل انسان وفعله، این واف نس سریحه به معنی مصاحبه است در واقع چونین از کل انسان معه فعله معه فعله واف به معنی چیه؟ معه به معنی چیه؟ بله. اینجا موقعی که چونین بود صد ما صد خبر میشه که خبر ما هم چیه؟ ما که خبری؟ نداریم اینجا ما خبری خب درست باید غورو درستی کنی یا نه